اصل تیغ ریش تراشیم را با کاغذ خشککانانی که همیشه یک دسته از آن کنار دستوییم آویزان بود تمیز می کردم. نماینده شرکت صابونسازی آنها را به من هدیه میداد. عکس لبهای خونین خون این رنگ قرمز زنی روی این کاغذ ها چاپ شده است. وزیر این لب سرخ رنگ نوشته شده است، لطفا رژ لب خود را با حوله دست پاک نکنید. بر روی نوع دیگری از این کاغذ تصویر مردی که با تیغ تراشیش حل را پاره کرده از دیده می شود و روی آنها نوشته شده است. برای خوش کردن تیغ ریش تراشی این کاغذ ها را مصرف کنید. اما من ترجیح می دادم که برای استفاده شخصی از کاغذ هایی که با تصویر لب قرمز رنگ است استفاده کنم و کاغذ های دیگر را به بچه های صاحب خانم هدیه دهم. بر کابری را که ولف غروب با خود به همراه را آورده بود با پولی که شبها از جیب هایم بیرون میآوردم و روی میز میگذاشتم برداشتم وقتی از اتاقم بیرون میرفتم زنگ تلفن به صدا درآمد صاحبخوانم دوباره گفت: بله پیغام شما را به او خواهم داد بعدن نگاهی به من انداخت و گوشی تلفن را بدون اینکه چیزی بگوید به طرفم گرفت من سرم را تکان دادم اما او قدری جدی اشاره کرد که رفتم و گوشی را گرفتم زنی گریان چیزهایی می گفت که من فقط از آن فهمیدم خیابان کوربل بیایید لطفا بیایید گفتم باشه میایم و زن گریان دوباره چیزی گفت که من فقط از آن توانستم بفهمم فهمم شوهر من خواهش می کنم بیایید بیایید فمن دوباره تکرار کردم بله میایم و گوشی را گذاشتم خانم صاحب خانه گفت: گل را فراموش نکنید و غذا یادتان نرود چیزی به نهار نمانده است گل را فراموش کردم از یک حه دور افتاده به شهر بازگشتم اگرچه که در همان نزدیکی می توانستم یک کار تعمیراتی دیگر را نیز انجام بدهم و به این ترتیب کیلومتر طی شده و مدت زمان حرکت را دوباره حساب کنم سری رانندگی می چون ساعت یازده و نیم بود و قطار ساعت یازده و چلاه هفت دقیقه می رسید. این قطار را میشناختم. هر وقت که به ملاقات پدرم می رفتم، اقرب روزهای دوشنبه با این قطار از آنجا برمیگشتم. در بین راه به طرف راه آهن، سعی کردم سیمای این دختر را در ذهنم مجسم کنم. وقتی هفت سال پیش آخرین سال را پیش پدر و مادرم می او را چند مرتبه دیده بودم در آن سال دقیقا دوازده بار در منزل خانواده مولر بودم هر ما یک مرتبه آن هم به منظور پس دادن دفتر تمرین های زبان جدید که پدرم طبق نوبت تعیین شده میخواند در آخرین صفحه در زیر ورق امضای کوتاه شده سه کارشناس زبان جدید آن هم کاملا تمیز به چشم میخورد. امیو امضای مولر بود زد بیکی امضای سوبانک بود و اف ای -E مخفف نام پدر من بود که از آن نام خانوادگی فنریش به من به ارث رسیده بود. روشنتر از همه لکههای تیر رنگ خانه مولر را به یاد می‌آورم. روی گچکاری سبز رنگ پنجره طبقه همکف لکههای سیاه رنگی بر اثر بخار رطوبت و خیسی زمین شکل گرفته بود. تصویری سیبا و تماشایی که همیشه به نظرم مثل نقشهای اطلس اسرارآمیز می رسید. به تابستان که نزدیکتر می شدیم، اطراف این لکهها خشک می شدند که مانند تهاچهای گل به نظر می رسیدند. شبیه لکههای سفید بیماری جزام و حتی در حرارت تابستان هم، وسط این لکهها ای به رنگ خاکستری تیره دیده می شد. در زمستان و پاییز رطوبت اطراف این لکههای سفید رنگ شبیه بیماری جسم را و میداد. درست مثل یک لکه جوهر که روی کاغذ خوش‌کن پخش شده باشد، سیاه و خسته کننده. نیز به خوبی بینظباتی مولر را به خاطر می آوردم. پیپ بلندش را، کتابهای جلد چرمی و عکسی که در راهرو مولر را با کلاه رنگارنگ دانشجویی نشان میداد. زیر این عکس هم خطوط پیچ در پیچی دیده میشد که نمونه امضای دانشجویان انجمن دانشجویی تو ایتونیا یا یک انجمن دانشجویی دیگر بود گاهی پسر مولر که دو سال از من جوانتر بود را میدیدم. زمانی با هم در یک کلاس بودیم اما او بعدها زودتر از من به کلاس بالاتر رفته بود بندی او خیلی درشت بود موهای کوتاهی داشت و مثل بچه گاو میش به نظر می‌رسید سعی می تا بیش از یک دقیقه با من نباشد. چون او یک جوان عزیز و دوست داشتنی بود. شاید برایش خجالت آور بود که وقتش را با من بگذراند، چون به نظرش سخت میرسید که جلوی خودش را از بازگو کردن چیزهایی که درباره من فکر میکرد بگیرد. آن هم برای اینکه من دلخور نشوم. همدردی، دردی غرور بیجا و آن برخورد بظاهر دوستانه و تصنعی، به این ترتیب وقتی او را می دیدم با حالتی خشک تنها به گفتن روز به خیر اکتفا کرد و راه اتاق پدرش را به من نشان می داد. فقط دو بار دختر بچه دوازده یا سیزده ساله را دیده بودم. بار اول با گلدانهای خالی در باغ مشغول بازی بود. در کنار دیواری پوشیده از خزه های سبز رنگ. گلدانهای قرمز روشن و خشک را به شکل هرم بر روی هم چیده بود. و هنگامی که صدایی زنانه گفت هدویک از ترس از جا پرید و به نظر می‌رسید که ترس او روی گلدان ها هم تأثیر گذاشته باشد چون بالاترین گلدان این حرم روی کف پوش خیص سیمانی تیر رنگ حیات افتاد و قطع قطع شد بار دیگر او در راه روی که به اتاق مولر راه پیدا می‌کرد بود در یک سبد لباس ترتیب رخت خوابی برای یک عروسک داده بود موهای روشنش بر روی گردن بچه گانه و لاغرش که در راه رو تقریبا سبزرنگ به نظر می ریخته بود. و صدای او را می شنیدم که آهنگی را بالای سر عروسکی غیر قابل رؤیت زمزمه می کرد. آهنگی که برایم آشنا نبود و او در فواصل معینی لغتی را تکرار می کرد. سوویا سو سو سوویا و وقتی که سر راهم هم با اتاق مولر از جلوی او گذشتم به من نگاهی کرد و من توانستم صورتش را ببینم. رنگ پریده و لاغر. چند طره ی گیسوی بلندش توی صورتش ریخته بود. این باید خود هدویگ باشد. همان کسی که الان برایش اتاق گرفته بودم. شاید بیست هزار نفر در این شهر دنبال چنین اتاقی که باید برای دختر مولر پیدا می باشند از این اتاق ها شاید تنها یکی دوتا پیدا شود و این اتاق به آن فرشته ناشناخته اجاره داده می شود که گهگاه بین انسان‌ها سرگردان است من چنین اتاقی دارم آن وقتا که از پدرم تمنا کردم مرا از خوابگاه کاراموزن نجات دهد آن را پیدا کردم اتاق من بزرگ است با موبرهای کم و کهنه اما راحت و این چهار سالی که من در آن زندگی را میگذرانم به نظرم به اندازه ابدیت میآید. من تولد بچه های زن صاحبخانه را در آن شاهد بودم و حتی پدر خانده ی کوچکترین آنها نیز شده بودم چون این من بودم که شبانه به دنبال ماما رفتم. هفته های متمادی وقتی که کساب زود از خواب بلند میشدم شیر روبرت را گرم میکردم و شیشهاش را می دادم. چون زن صاحب خانه وقتی از کار شبانه خسته و بی به خانه میآمد صبحات ها دیر وقت میخوابید و من به هیچ وجه دلم نمیآمد که او را از خواب بیدار کنم شوهر او از آن جمله آدم هایی است که در برابر چشم جهانیان به عنوان هنرمند شهرت پیدا کرده است از هایی است که در برابر سختی های زندگی شکست میخورند و به مقصود نمیرسند. او ساعتها درباره جوانی از دست رفتهاش در جنگ حرف میزند و می میکند او میگوید به ما خیانت کردند، به بهترین سالهای زندگی یک انسان یعنی سنین بین بیست و بیست و هشت سالگی خیانت شده است برای او این سالهایی از دست رفته بهانه شده است تا همسرش او را با وجود تمام آن رفتارهای بیمعنیای که میکند نه تنها ببخشد بلکه حتی انجام آن را نیز برایش ممکن کند. او نقاشی می کند. خانه می کشد. آهنگ می سازد. اما هیچ کدام از این کارها را لاغر تا آنجا که به نظر می رسد صحیح انجام نمی دهد. گرچه گهگاهی برایش درآمدی هم دارد. در اتاقهای خانه ترهایش آویخته شده اند. تره ای برای یک نویسنده در ارتفاعات تانوس. خانهای برای یک مجسمه ساز و روی تمام این طرها درختها توی هم میلولند آنگونه که معمارها نقاشی میکنند و من از درختان معماران متنفر هستم چون پنج سال است که هر روز آنها را میبینم من پنت‌های او را مانند داروهایی که یک رفیق پزشک برای آدم تجویز میکند فرو میدهم او تقریبا اینطوری میگفت من هم وقتی به سن و سال شما بودم، باید به تنهایی در این شهر بر خیلی از مشکلات و خطرات فائق آمدم. خطراتی که امیدوارم شما با آنها روبرو نشوید. و من بعدا متوجه شدم که منظور او محله زنان بدکار است. شوهر صاحبخانم خیلی مهربان و دوست داشته است، اما از نظر من او مرد احمق و کنزه است که تنها استعدادش این است که عشق همسرش را نسبت به خود پایدار نگه دارد. زنی که به او بچه های جذابی بخشیده است زن صاحب من درشت و بلنده است و من چند وقتی پاک باختهش بودم طوری که مخفیانه پیشبند و دستگشایش را میبوسیدم و از شدت حسادت نسبت به شوهر ابله او نمیتوانستم چشم روی هم بگذارم اما او شوهرش را دوست داشت به نظر می رسد که یک مرد الزامن نباید فعال و موفق باشد تا مورد عشق چنین زنی که من هنوز هم او را تحسین و ستایش می کنم قرار گیرد. اغلب او از من چند مارکی می گیرد تا به یکی از این کافه های هنرمندان برود جایی که او سعی می با زدن کرواتی عجیب و موهای شان نزده خودش را مهم جلوه دهد. او یک بطری عرق را خالی می کند و من بابت این کار به او پول می دهم. چون برایم ممکن است که با تغییر کردنش باعث رنجاندن و آزردن زنش بشوم می او میداند که چرا من به وی پول می دهم. زیرا مسلح به مکرییده است که بدون آن آدم های تنبلی مثل او از گرسنگی خواهند مرد او از آن آدم های تنبل و بی است که میتواند با ظاهری فریبنده قیافه یک آدم هنرمند و بدیهگو را به خود بگیرد اما گمان نمیکنم که او جدا توان و شعور کارهای هنرمندانه را داشته باشد و به خارج از نقش واقعیش بازی کند همیشه به نظرم می آمد که یکی از آن اتاقهایی را پیدا کردم که براستی لنگه ندارد و بیشتر از همه از این متعجب بودم که تقریبا برای دختر مولر همچنین اتاق خوبی پیدا کردم آن هم در مرکز شهر و در ساختمانی که من در آن مسئول فنی و کنترل ماشین های یک را رو به عهده دارم. من قطعات لاستیکی را از نظر دوام آزمایش میکنم. لوله ها را قبل از آنکه پوسیده شوند تعویض میکنم. پیچ ها را پیش از آنکه کاملا شل شوند آچارکشی میکنم. من عاشق مرکز شهر هستم. محله هایی که صاحبان و ساکنینشان طی پنجاه سال گذشته تغییر کرده اند. درست مثل لباس فراکی که برای اولین بار در جشن عروسی پوشیده می شود و بعدها آن را عمو یا دایی فقیر و توحیدستی که با نوازندگی روزگار را می گذراند می پوشد. فراکی که دست به دست بین ورراس می چرخد و سرانجام در یکی از حراش های محسسات حسنه به دست کهان خری می افتد که آن را با قیمتی مناسب به اصیل زاده ها یا اعضای حکومتی به امانت می دهد. که غافلگیرانه برای حضور نزد وزیری دعوت میشوند که کشورش را بیهوده در اطلس کوچکترین پسرشان جستجو میکنند. آنجا در آن خانه‌ای که حالا سالن لباسشویی باز شده است برای دختر مولر اتاقی پیدا کرده بودم که تقریبا با شرایط پدرش مطابقت داشت. جادار پنجرهی بزرگ داشت و شکل مبلمان آن چندان هم زشت نبود. از پنجره آن می نظری به باقهای نجیبزاده ها انداخت. اینجا با وجود اینکه درست در مرکز شهر واقع شده بود، عصرها بعد از ساعت پنج همه جا سکوت و آرامش برقرار بود. اتاق را برای اول فوریه اجاره کردم. اما چون مولر آخر جانویه برای که دخترش مریض شده است و می تواند تازه پانزده مارس بیاید، به درد سر افتادم. از من خواسته بود که ترتیبی بدهم تا اتاق برای او خالی نگاه داشته شود اما اجاره ای پرداخت نشود برایش در پاسخ نامه تندی نوشتم و در آن وضعیت مسکن را در شهر توضیح دادم اما بعدا که او فروتنانه برایم نوشته بود که آماده است اجاره شش هفته را پرداخت کند خیلی خجالت کشیدم فقط میخواستم خاطر جمع شوم که آیا مولر واقعا اجاره را داده است یا نه به هیچ فش به دخترش فکر نمی کردم. او اجاره را فرستاده بود و هنگامی که من از صاحبخانه در این بار می کردم از من همان سوالی را که می خواستم اولین بار اتاق را ببینم کرد. آیا او دوست دختر شماست؟ مطمئن که دوست دختر شما نیست. با عصبانیت گفتم خدای من، من به شما گفتم که اصلا این دختر را نمی شناسم. او گفت من تحمل نخواهم کرد که گفتم: «میدانم که شما چه چیز را تحمل نمی کنید. اما من به شما گفتم که من این دختر را به هیچ وجه نمی شناسم گفت: بسیار خوب من فقط برای این سال می کنم چون بعضی وقتها برای نامزدها ها قائل می شدم من از لبخندش متنفر بودم. گفتم خدای من حالا دیگر نامزد هم شدیم. لطفا آرام باشید. اما به نظر نمیرسید که خاطرش جمع شده باشد. چند دقیقه دیرتر به ایسگاه راه آهن رسیدم و در حالی که سکه دفنیکی را در دستگاه اتوماتیک برای دریافت بلیط ورودی میانداختم سعی کردم دختری را که آن وقتها آهنگ سوویه را میخواند بیاد بیا آن زمان من دفترهای تمرین زبانهای جدید را از راهروی تاریک به اتاق مولر هم میکردم. بر روی پله های سکوی ایستگاه استادم و با خود فکر کردم بلوند 20 ساله به شهر میآید تا معلم شود وقتی مردمی را که از کنارم می گذاشتم ور انداز می کردم، به نظرم رسید که جهان پر از دختران بیست ساله موبور است مردم زیادی از قطار بیرون می آمدند همه آنها هم چمدانی در دست داشتند و به نظر می رسید که به شهر می تا معلم شوند. خیلی خسته تر از آن بودم که از یکی از آنها بپرسم سیگاری به لب گذاشتم و به سمت دیگر پله ها رفتم و دیدم که پشت نرده دختری بر روی چمدانی نشسته است. دختری که مطمئنا تمام وقت پشت سرم نشسته بوده است. او موهای تیره داشت و بارانیش به سبزی چمن بود. چمنی که در یک شب گرم به شدت باران خورده باشد. بارانیش چنان سبز بود که فکر می کردم باید بوی چمن بدهد. موهایش به سیاهی سفالهای سخفی بعد از ریزش باران می مانست. صورتش تقریبا سفید روشن بود به سفیدی رنگ نقاشی تازه قهوه‌ای متمایل به زرد با خودم گفتم باید آرایش کرده باشد اما اینطور نبود من فقط به بارانی سبز روشن و آن سیما نگاه میکردم و ناگهان وحشت کردم اما وحشتی که کاشفان هنگام قدم گذاشتن به سرزمینی تازه احساس میکنند. با علم به اینکه گروه دیگری در راه است که شاید پرچم را زودتر از آنها در آن سرزمین برف راشته و به تصرف خود درآورده باشد کاشفینی که وحشت دارن رنج و عذاب سفر با تمام دشواریها و نامالایمات آن بازی با زندگی و مرگ ممکن است بیفایده بوده باشد این صورت در من تأثیر عمیقی گذاشت مانند وزنه ماشین ضربه آهنی بود که به عوض شمش نقره بر موم فروداید تأثیر این سیما در من به حدی بود که گویی وجودم را مثل مته سوراخ می کند بدون اینکه که خون بریزد برای یک لحظه دیوانهوار آرزو کردم که این چهره را از بین ببرم درست مثل نقاشی که تنها نمونه نقاشیش را نابود کند سیگار را انداختم و پهنای پله را که شش قدم بود به سرعت برداشتم. وقتی روبرویش قرار گرفتم ترسم ریخت. گفتم: می توانم برای شما کاری انجام دهم؟ او می کرد و سرش را به علامت تایید تکان داد و گفت: بله. می توانید به من بگویید خیابان یودن کجاست؟ گفتم: خیابان یودن. گویی اسمم را در خواب می شنویم بدون آنکه آن را به عنوان اسم خودم بشناسم. فکر و حواسم جایی دیگری بود و به نظرم می رسید که می توانم مفهوم واقعی حواسپردی را درک کنم. گفتم خیابان یودن، بله خیابان یودن، دنبال من بیایید. او را تماشا می کردم که چگونه از جا برخاست و با کمی تعجب چمدان سنگین را بلند کرد و من آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بودم که فراموش کردم باید چمدان را بردارم. اصلا طبق آداب و رسوم معمول رفتار نکردم. در آن لحظه اصلاً نتوانستم تشخیص دهم که این خود هیدویگ مولر بود که میبایست میشناختم. اما بر زبان آوردن کلمه خیابان یودن مرا کاملاً گیج و گمراه کرد. یک چیزی اشتباه گرفته شده بود ویا درهم و یا در همو بر هم بود. اطمینان داشتم که دختر مولر بلند است. او یکی از داوطلبان بیشمار موبلان برای شغل معلمی بود که از مقابل من گذشته بودند و من نتوانستم او را از دیگران تمیز بدهم. هنوز هم شک دارم که آیا او واقعا خود هدویگ مولر است. این اسم را با تعلل بر زبان میآورم چون به نظرم می رسد که باید تازه برایش اسمی پیدا کنم. در جواب نگاه پرسشگر گفتم بله، بله،, بله بیایید. و اجازه دادم که با چمدان سنگین جلو برود و من به دنبال او به طرف در خروجی به راه افتادم. در این نیم دقیقه ای که پشت سر او راه میرفتم به این فکر می کردم که او را به تصرف خود در خواهم آورد و برای نیل به این مخصود هر چیز را که بخواهد سر راه هم قرار گیرد و مانع شود نابود خواهم کرد. خودم را می دیدم که چگونه ماشین های لباسوی را خرد می کنم. و با یک چکش 5 کیلویی به جان آنها افتادم و ضربه می زنم. به پشتش، به گلویش، به دستهایش که به خاطر بلند کردن آن چمدان سنگین دیگر خون در آنها چهریان نداشت نگاه میکردم. به کارمند ایستگاه راه آهن که یک لحظه دست او را هنگام دادن دست بلیت ششتایی لمس کرده بود حسادت می ورزیدم. نسبت به کف ایستگاه راه آهن که او با پاهایش روی آن بر می حسادت میورزیدم وقتی ما تقریبا به در خروجی نزدیک شده بودیم تازه به این فکر افتادم که چمدان را از دستش بگیرم گفتم: ببخشید و کنارش پریدم و چمدان را از دستش گرفتم گفت: لطف کردید که دنبالم به ایستگاه راهنمایی. آمدید گفتم خدای من شما رو میشناسید او با خنده گفت. <تص> معلومه که می شناسمتان. شما روی میز تحریر پدرتان است. شما پدر من رو می شناسید؟ گفت. بله. من پیش پدرتان درس می چمدان را عقب ماشین گذاشتم و ساک دستیش را کنار آن قرار دادم. و به او برای سوار شدن کمک کردم. و به این ترتیب برای اولین بار دست و آرنج او را لمس کردم. آرنجش گرد و قوی بود. و دستش بزرگ ولی سبک بود دستی خشک و سرد و هنگامی که دور ماشین گشتم تا به طرف دیگر بروم و پشت فرمان بنشینم جلوی رادیاتور ماشین ایستادم کاپوت را بالا زدم و وانمود کردم که به موتور نگاه میاندازم اما در واقع او را که پشت شیشه نشسته بود زیر نظر داشتم و نگاه میکردم میترسیدم اما نه آن ترسی که کسی می توانست او را کشف کند، و از آن خود کند این ترس در من از بین رفته بود چون میدانستم که هرگز از کنار او دور نمی شدم و لحظید ترکش نمی کردم نه امروز و نه هیچ روز دیگر در آیندهی که در پی خواهد بود و به مجموع آن زندگی می گویند. ترس من از چیز دیگری بود ترس من از آن چیزی بود که انتظارم را می کشید قطاری که می‌خواستم سوار آن بشوم آماده حرکت بود. همسفرهایم سوار شده بودند. قطار در بخار گم شده بود. علامت بالا رفته بود. مأمور راه آهن با کلاه لبهدار قرمز علامت را بالا برده بود و همه چیز و همه کس فقط منتظر سوار شدن منی بودند که مردد روی پله های ایستاده بودم. انتظار داشتم که بلافاصله پایم را داخل قطار بگذارم. اما در همین لحظه به پایین پریدم به صحبت‌ها و بحثهایی فکر می‌کردم که مجبور به تحمل آنها بودم حالا میفهمم که همیشه از بحث و گفتگوهای باز و بیپرده نفرت داشتم مزخرفات بیپایان و مبتزل و بررسی بیهوده و بیگناهی اتهامات فریاد و فغان، تلفن‌ها، ها، گناهی که باید بر دوش میکشیدم گناه و جرمی که از قبل داشتم. از طرف دیگر، زندگی کاملا خوب و قابل قبولی را می دیدم که چریان داشت. مانند ماشینی پیچیده که برای یک نفر آماده شده است، اما او دیگر آنجا نیست. من دیگر آنجا نبودم. پیچ‌ها شل و ها مثل آهن گداخته شده بودند. قطعات حلبی به هوا پرتاب می‌شد و بوی سوختگی به مشام می رسید. خیلی وقت بود که کاپوت را بسته بودم بازوهایم را رو روی قسمت حلبی رادیاتور تکیه داده بودم و از شیشه جلوی ماشین به صورتش که به وسیله برف پاکون به دو قسمت نامساوی تقسیم شده بود نگاه می کردم برایم غیرقابل درک بود که هنوز مردی پی به زیبایی او نبرده باشد کسی او را نشناخته و این زیبایی را کشف نکرده باشد شاید هم او در همین لحظه که من او را می‌دیدم و وجود آمده بود